راژیو اجار نشین ها نویسنده و کارگردان داریوش مهجوی بازیگران عزت الله انتظامی در نقش عباس آقا، اکبر ابدی در نقش آقا غندی، ایرج راد در نقش آقای توسلی، رضا رویگری در نقش مهندس، حسین سرشار در نقش سعدی فردوس کاویانی در نقش مشت مهدی بنا، فریماه فرجامی در نقش مهندس افجی و زنده یاد حمیده خیرابادی در نقش ماده آهنگسازان ناصر چشمازر و رضا رامی تهیه‌کنندگان کنندگان شرکت سهامی پخشیران و محمد علی سلطانزاده سال ساخت 1365 در ورودی یک ساختمان چهار طبقه نمور و فرسوده در هاشی شهر و دو تا معمر شهرداری و اداره پست که معمر اداره پست مشغول نصب پلاک 19 روی دیوار خونه است. یک خانم چادری که مادر خونه است با سینی چای و شیرینی به جلوی در میاد. بفرمایید. دست شما درد نکنه. چای شیرین کنیم. قابل شیر نداری. خیلی ممنون. بفرمایید چایی بخورید. احمد آقا میخواین یه چایی بخور؟ ها، فرامت هاش حالا میاد. خسته که خیره. مادر سینی چای و شیرینی رو, رو روی سکوی کنار در می‌ذاره و از ها بالا میره. احمد... بله بله. بله چرا و نوزادی و پایان کار رو احمد؟ حالا چرا 12؟ از سر اون خیابون از اونجا. از پلکه مستنبات تا اینجا این خونه نوزده همه مه ارزمونم که این میشه 21م و و بعد 23 سوم تا اون آخر. عرض کوچه چقدره؟ قدره؟ کدوم کوچه؟ اینجا. این که خونه بیست و یک کم دیگه؟ یعنی چی؟ اینجا قرار کوچه بشه. این خونه دو نبشه شه. تو نقشه ای ما که از کوچه خبری نیست. بعدا شاید. نمیدونم. اینجا همینطوری تا آخر ادامه داره. از اون هم یه اتوبان میشه. یه ماشین پیکان از میون خاکهای بیابون به ساختمون نزدیک میشه و یه آقای عینکی که آقای توسلیه با خانومش که کلی خرید تو دستشه از ماشین پیاده میشه. نه، شاید شما که ولی ممکنه شاشا خوبی که. اون خونه هر جا یک قرارداد خونه پیش که ها بالا خونه ها خونه حوالا. اجاره ای پیدا میشه یه وجب جارو قیمت خونه پدرش میگه ولی قهوه مبارک دیگه به جون شما خسسله مشکله درست میشه شما من عکس گرفتن چشماتون آقا مهندس خان اگه خیلی تون میکشه مادر بچم راحت زیادم طول نمی کشه. بله بله. واسه اینجای نقشه های خیلی جالبی ریختن. بله. اینجا خوبی داره. آه. اینجا پارک میشه، درختکاری میکنم. بله بله. اونم یه پل میذارم. خیلی جالب میشه. بله بله. بله بله. خیلی فایده ما که بعد بریم. ولی به هر حال اداد خوشو میاد مادر. یک وقتی هم به جلو یه ساختمون میرسه و یه پسر نوجوون که اسمش اکبره و یه مرد میانسال که اسمش عباس آقاست از ماشین پیاده میشن و خریدها رو از صندوق عقب ماشین بیرون میارن. چه چیزیام برام بابا را. سلام وقت بخیر. سلام ما راحت. خیلی ممنون ازاد جان. خیلی ممنون شب شد تشکر. خانم خب اجازه فرمی؟ اجازه مگه؟ اجازه مگی. خانم مریم؟ فرموتون داره حرمتون میاد. فرموشه میمنو. خدمت برسیم. خدمت لازم. آقا. آقا. پیش به کوچه بگو بیاد بالا خودش ببینه. ماشالله. ماشالله. بگی بگی چی بگم؟ چی پیش بگی بودی که بالاخره مال پلازا تیپی در بیاره دیگه. ببخشید ابو صغا. ممکنه یه توقفا بیایم بالا یه نگاهی به حموم و ما بندازیم. چی شده؟ والله بازش خیلی خراب. ده. آب همه جا رو گرفته. اومد سیده؟ نه. چی شده شما یه دقیقه تشیف بیاری خودتون ببینید آقا اصغر بفرمایید. بریم والا مهندس این و مهندسا وارد خونه توسلی میشن. بفرمایید. بفرمایید. دیوارهای کناری دستشویی نم پسته. دستشویی پر آبه. لوله‌های حمامم هم ترکیدگی دارن و چک میکنن کنن و سقف هم آب می‌چکه. نه با شما باید از مستشاری ببینید. ولا این چه وضع در شویی؟ اونم وضع لولای حمومه. از دشفت عالم که اینجا شکاف پردش هم تشور شور داره آب میریزه تو. واه میگه شورشو؟ خب حالا چند تا شده. بهنای کرد. خب شما گفتین بگید یه جوریه بشه. عباس آقا خدا شکر هر روز داریم میریم دنبال جا به صد نفرم سپردیم ولی تا جا پیدا شه اینجا باید قابل سکونت باشه. من پیشنهاد میکنم تا ما یه جایی پیدا بکنیم. شما اجازه بدین یه تعمیرات جزئی صورت بده. میاد تا این سقف ممکن هر دقیقه بیاد پایین. باشه که آب که وقتی خونم زدید خراب نمیشه. خب یا خودی گل وارد مالی اینجا، یا خودی ای مالی اونجا این تاشتون واردی. با دنیانی آب چیکار؟ آه. آب <تصفح> با رو پارت میکنه جایی که آب می <تصفح> <تصفح> <و از دستشوی تصفح> میشه که از دستش بیرون. خوب میشه تعمیراتی که گل به مالی و تشت بذاریم. و تعمیرات چیزیه که همینه. ولی چیا چند روز این خراب شده یا تعمیرات کولیه درسته؟ نمیخواد. هموم ما آقای قندی هم زرتش خمتون شده. با خاطر همینی که میگم اول تخلیه بعد خونن تخییر کنه بریم رو بعد یه خونتکونی استفاده کنیم. اون که تکلیفم که صادر شده خدمتتون. بله بله حکم تخییر رو که توسط نماینده قانونی ورثه یعنی جناب صادر شده بود ما دریافت کردیم. اولا که قانونا ما دو ماه بعد از دریافت حکم تخییر فرصت داریم تا خونه رو تخییر کنیم. ثانیاً مسئله بر سر همین مشروعیت نماینده قانونی خونه و موجودیت واقعی ورثه است. بله ابوسقا آقا شما که میدونین آدم یه چیزایی میشنبه یه چیزایی هم با هم میگن ما دوست نداریم که خبر بد به مردم بدیم. ولی خب آقای قندی میگن میگه که از باغری معامادملکی شنیده که شنیده که این خونه بررس قانونی و واقعی نداره نداره نداره اسقا نداره. گفته هشت ماه کلیه و راست موم رام دامدار تو تصادف ترن دوسل دور به رحمت ایزدی بید. خداچار نکنم اون تصادف معروفه که دو تا ترن با هم شاخ شاق شدن. کدی میستی ساتو کشته دا؟ خیلی بیشتر بودم. خیلی بیشتر دوتا تا ترن بود آقای مهندس. عباسقوم آقا مهندس از در خونه بیرون میاد. و اینا اثرین. شما میگین 8 ماه که همه براس و آقای رام تون تصادفنا چی چی اورف نفله شدن. درسته؟ 8 ماه. اون وقت ما خبر نداریم. ما کناسلماتی مباشر و نماینده قانونی آقای رامدان داریم خدا کنه که صحت نداشته باشه ای صحت داشته باشه چیگه توسطلی؟ طبق قانون انحصار براست خونه مجبور و وارس اعلام میشه حکم تخلیهی هم که به تغازای نماینده قانونی برسه یعنی ایشون صادر شده خب از درجه اعتبار ساخت میشه بله از اعتبار میفته بله ورسه ای فوت نکرده جناب توسطلی اینا یه مش شایعات و دروغ دلانگی که این دلالا راه می‌ندازن ما را جون همینا زن تا خودتونی واسه چی بزنن شما چرا گونه حرفا میخوری شما چرا واسه من این دربه داغون یه تعمیرات کلی میخواد که مررود به اصل بنا و جلوگیری از خرابی اونه تعمیرات جزئیه بود که هم به شما گفتم شما هم به جای این کارا بهتره فکر جای دیگه بچین مثل ما مثل بالایی ها می‌بریم ما چه آقای توسلی به خانمش نگاه میکنه. می‌کنه خانم توسلی سحب تاسف تکون میده و میره آب و بردارش آقای مهندس. بارت خونشوم میشه یرونا. حالا یه دغدغه نیستی جلون شک دن سوال برم درتو رو. ونگه بیچون وای من چی گفتم؟ تو نه قفل <تصفح> کرد. خب دردسر دیگه تمام. فک <تصفح> فامینیزم رو مدام داری تو <تصفح> بودم. چه گفتم تو بودم. من فقط یه سوال کردم. خودداری سوال کردی بیجا کردی تو سوال چون خود عشقتون کنم. مادر به خودت سری می‌گم. شی شده شده. آخه یه ذره شعور نداره بفهمی وقتی یارو این میزن و ماده قانون به رخ من میکشه خب بابا یه منظوری داره یارو چیه ماده قانون چیه چند دونم ما وقتی نسبونی یک شرم از آقای توسلی سوال کردم که قضیه مشهور ورایسه بودن خونه حقیقت داره یا نه همین یک کلامی جو کردی سوال کردی همی تو همین سوره توش که این به دلنگار همجو پخش میکنه ای داد و بیزار مرج نره خرخجاله بکشه صفت شب خونه کاری عین نه پیرزنا هی حضور میکنه و ور میذاره مگه شانسی نمندیم واسه چی بره ما صبح کلامی چیزی نه من توهین میکنه بیا یار مون اینقدر کفایت بیورزه که با به بغل مهندس رو به داخل اتاق میبره نه نه ما شب دوا ندارم اون به چه حقی اومدی خودت سر بچه‌ت اینا کردی برادری باشه و از اگه تو خود خودت عرضه داشتی میشه خونه زندگی خودت را بندازی. من تا این پروژه الهام از تبو تموم نکنم هیچ کاری نمیتونم بکنم. اگه پروژه پروژه‌تو تموم کنی، تعال چرده بودی. تو به کار نمیدی. چقدر برات کار جور شد، چه فرصتایی پیش اومد. هر کدومو بگی با من دست دادی کدوم کار؟ کدوم فرصت؟ حالا مونده که بعد این همه زحمت بیام دستت رو دانشگاه رو ول کنم، برم توی کبابی ما... واسم کباب بزنم. یا برم توی قصابیه خویه گرام راسته پاک کنم گوش شرخ کنم راسته پاک کردن نیست و حساب تازه مگه چپ داره؟ نیچی. نه فقط هی کنه بخور و سرباره این اون باش من سرباره هیچ که نیستم من تو خونهی که خودم ساختم دارم موقتا زندگی میکنم اونم وقتی که بریم طبقه بالا همه چیز حساب میکنم این بابا از بابت مز این خونه هنوز به من بدهکاره چه خیال اکبر، اکبر سوئیچ کرده باشین. امروز تایم داری میخوای بری؟ بله سوئیچ برام اکبر نیست. برای من جواب باشه. مود روی میز و لای روزنامه ها رو میگرده. ببین من که نه. بله من دیگه. با این حالت نمیتونم رانندگی بکنی. مگه من میذارم اکبر. اکبر شب اکبر با بوسو سوار ماشین تو خیابون هن و اکبر ماشین رو کنار خیابون نگه میذاره و دوتایی تایی از ماشین پیاده بشن. اکبر دوباره به داخل ماشین برمیگرده و کتاب میخونه عباس آقا با عجل داخل پیاده رو راه میره تا به آژانس مسکن محتاب میرسه به کنار میز رئیس آژانس یعنی آقا غلام میاد و روی سندلی میشه مامان. چه سلام علیکم مشغول پول چمردنه گلم در حال پول چمردنه با علامت سر به عباس آقا میگه صبر کن اي داخل مشغول صحبت و معامله کردن. حالا یه دقیقمو از کناستار با از کنم دیم چی دارم بتیگم؟ بوشم با کبستا باقیم مستجرهای خونه قضیه برستر بودن همه شو؟ همه شو تیغن و میران و تصفاد غلام بی خیال پلچه موردن میشه چی میگم؟ چی؟ میدن خونه محچول و الورسه اعلام میشه؟ باید تو تقاضی تقریقی که از طرف نماینده قامان و الورسه شده از درجه اتوار بله بله گوشی گوشی میگه اسغر برمیگرده و تلفن رو برمیداره حلو نخواه میگه کجا بو ماغر بردن ماغری اکیم کسیم حالا این کارش رو کجا های کشیده دیم ساعت دیگه بیار اسغر من شده این آقا باغریه ناکس حال دیگه رفته تو نخه خونه کلانگی عباسه ها سوپر برشت جونه ای بدبخت و فلکزله اولی که دستش از همه جا بریده شده اومده این کرده به یه وجب جا. آه, کس تا فهمید خونوسته تو مدرس می دست به کار که داستی؟ این خوشی الان چن گس خرقه چون. بابا تو هم خاطر ناراحت نکن چیزی نشو می کی. این دستم زرش بری صاحبلی شک. میتونه. اگه میذاری اون تو سوف در بدم بهش. الان زنگ زر. نه بابا این بش ندیه. کیلم نگرد بیاد بیه تا بعدا. نه بابا. دست کسی نمی حالا. آقا قولم چون الان من چیکار کنم؟ بیا زاده بزن زیرش زلم بابا گفتم چطوری میگن علکی میگن ورثه زنده است بده خونه رو میخوام بفروشم پاشین گورتونو گم کنین ول بیرون بفروشم شما وکالت من مگه شما مباشر خونه نیستی خب چرا مگه شما نماینده قانونی ورثه نیست؟ چرا خب چرا از اختیاراتت استفاده نمی کنی چون نمیخونال بفروشی از شرش خلاص شدی بابا من وکالت دارم خونو بفروشم وکالتو میخوای چیکار من بهت وکالت میدم شما قولا به وکالت میده کاری چی شد این کارو واسه قرار آقا ما رو کردی؟ چه انتخاب کردی؟ یه به نشون بدی. تو چیکار داری؟ خونه رو بفروش پولش بده چی بده؟ بفروشن پولش بدم تو چی دیگر نمی‌خوام. بده یه چیز دیگه رو ببین. آقا، بده یه چیز دیگه‌ای ببین. مستلزم اصلا منم ابو یه رو مهندس افجایی یک پولی که ندید. اشووره مش ارث چپ داره این دورو بر معامله می‌کنه. زمین، خونه، ماشین. آبا جان، جانم. تلفن دکتر بگو اگه اهل معامله‌ای سی زیاد داریم مداریکی پاینیکارو کار دادم. اورژانس نوسیتشن دیدی؟ او دادم. نوسیتسه رو داری چی دادم. اشکال نداره، درکش می‌کنم. اول یه قلمه چجور می‌کنیم؟ بعد یواش یواش چجوری؟ بزنم؟ دیگه. بزنم؟ سری به علامت تایید تفکون میده آخه آخه چی بگم قلام جون؟ من کلی اون تلفن رو زحمت کشیدم. از اون اولین قرن نشد. کلام من یادم که به کنم داره. الان 3 سالی که احمد تفلی مرده. خب من گفتم اجینو برن طبقه دوم و سوم میدم به مادرم و داشم زن و بچه‌اش خودم میرم تو طبقه اول یه شیر میخورم عباس میگه دروسی کن چه درد نه تومتام میگیرم نوکرت یه قایچی ندیدی تو بیا خونه‌را بفروش بعد خودت ازش بخرب به خودت بگو نوکرت تو چه جوری میخوای اینا رو از خونت بیرون کنی راهشو داره میگه آقا بزن سرشو بزن بخور مادر زنده زنه یه چهار تو نفشه علو بزاشن بودشین به خونه عباس تو میگوشتمون اوناست حال اینا مرادیه کجا تو نمی دی اگه دیر به چون بیا، این واقعه ناکس با همسایه‌ها هولپی میکشن خونه رو بالا تا دو تا ماشین با سرعت زیاد در حال حرکت انو میپیشن داخل خیابون بونگاه و کلی مرد قالطاق از ماشین با داد و فریاد پیاده میشن اکثر از لای پردهی کرتریه بونگاه بیرون رو نگاه میکنه ایده تقییم می ای تو جمع کنیم اولا تو بونگاه مشغول جمع کردن اصناد و مدارک می شن با غری و دار دسته هش به سمت بونگاه میان. آن اسقر غلام با عجله پونه ها رو داخل گاف صندوق می با غری و دار دسته هش به جلوی بونگاه می و وارد می شن برمایش تو این شک می آن میری واسه ما پربنده جلس سندر باز می کنیم باش اگه تقییم دسته هفت نختیم بایینوان توب تو اراده کنم سیراب شیدونش که بدتر است. نه نیست ولی خودم خود جلوش واقف نکنم خسته کننده. دو نه ببند سیپا. دادن کن میخوادم این قدم تو عفونت. و از در ورده. وارد دوبار دست ماشین. باقی ریوباری کتنه در میار. تا که با داره خود جم کرده خیال می‌کنه باخیه باخ می‌زنه ولی باخ نمی‌دند چیو نه این نگاه کنم مثلا 13 شول خورد می‌مونه باز تا آخر ماه دو یکی سر چتاله اخه بعد چه پرم تو رو بزنم 4 تا جم میشه دیگه میگورم اصلا چی ما افت داره بلکه تو نه باشه بک با تو خوردش کیش کی بعد بند کنم خونی کلن بله بچه هم زبون باز کرده ما اراده کردیم این عقا گول نالوتی رو از او زمین برش داریم یکی از مرچه های غلام هم چاقو زامندار برش میاره که هر کاری میکنه زامندار میاره که هر کاری میکنه باز نمیشه بلا میره خمت آبدارخونه و یه نوشابه بر. برمیاره شکسته رو میخواد تو شکم باغری فرو کنه که یکی موچشو میگیره دعوا حسابی بالا گرفت یه اده غلام رو گرفتن و یه اده دیگه باغری رو باغری یه لحظه از فرصت استفاده میکنه و با چاقو دو تا خط رو صورت غلام میندازه باغری و دار دستش به سرعت از بنگاه خارج میشن و سوار ماشین هاشون می شن غلام و دار دستش میرن سراغ باغری و عباسقا تو بنگاه تنها می بینه و بیرون و نگاه میکنه. ی باید لاغر و بلند که اسمش سالکه سوار ویلچر و در همون حال با یه انبار آشغال رو تو خونهی به هم از روی زمین بر میداره و زمینو جارو می‌کنه. پشو پشو دیگه یه بالش از روی موبول بر میداره و پرت میکنه سمت یه مرد توپل سیبیلو با موهای کمپشت که اسمش آقای غندیه و روی زمین خوابیده. سالک سمت میز پذیرایی میره و سعی میکنه روی موس رو بسه بیستقه به زوره غندی یک به خودش میده دنبال حولش میگرده و روی یه سندلی چوبی پیداش میکنه حوله رو روی دوشش میذاره و شروع میکنه به اجرای حرکات رزمی که کمرش میگیره آقای غندی به سمت حمام میده تمام دیوارها نمپس داده قندی با کمی فکر و تعامل وارد حمام میشه که در ابتدای ورود در حمام از جاش کنده میشه و میفته. وقتی در سر جاش میذاره و به سمت یه گلدون میره و جابجاش میکنه تا از لوله ی ترکیده ی داخل دیوار به گلدون آب برسه. کف حمام پر آب و غندی از روی تخت چوب وسط حمام رد میشه تا به آینه دستی میرسه. سالن! یالا من دست آه آه آه، یا یا به زنگ بزنی بریم بالا فاضل شوره. تیر رو بر می داره که صورتش رو بزنه ولی سر و صداهای عجیبی از داخل دیوار توجهش رو جلب میکنه. آ... آ... آ... آ... بیخیال صداشو به اوج خودش میرسونه و ضربههای ممتد با دست به گلوش میزنه تا چهچهش زیباتر بشه درگی یهو با دو دستشو با وحشت آینه رو میگیره آینه و دیوار با هم میریزند و تمام لولههای پشت دیوار به شدت آب میپاشند غندی به هر طریقی سعی میکنه جلوی آب رو بگیره ولی است. استسالک به سرعت به سمت حمام میاد که غندی از حمام پرت میشه بیرون مهندس و مادرش هم با عجله و نگران وارد میشه. خیقنگی خدا مردم بازلونتر چی دوری شده اداده بیدار باشو مادر باشو یه چیزی بپوش سرماه میخوری مادر تو آئی خدا رو شوق <تصفيق> کن که چیزی نشده مار مردم دیدار خدا چرا اینجوری شده الانه که خونه را آف بر میداره خدا مردم ما تا اونی چکاریش داریم؟ قربان اون بره. ازیل آب و بگی. ترکیده آم نه ترکیده. اما اتفاقاً بود وارون اصلاً شلوغی جامعه ما رو مصرف می‌کنه وقتی بودم ازش بود. خوب من اتیم اونی چکاریش کرد؟ مادر جو. خوب من اتیم گذاشتم کارم که نمی‌ذارم من در این جلو درست کنم برم تا اونجا. می‌توند در آب و هر می‌توند در این جلو. شابیه سلامت است. حالا مرا شیرفانه کرده بام. اونم خیلی راضی. نمیشه اینجوری که. آقا حالا می‌خوام ازش. هنوز مادر نرفتی کی خود مادر خود برو ابو باباش پیش بگو یہ لوری بعد رو رو بیار ہا شش رو دفتر کر مادر کی فسانہ مادر تماشا نداری میبینی که خونه تیرے خراب میشه برو مادر اگر نہ بودا بود دنبال تیرے دل قلبہ بپرسیں پتھر پیدا کنی یا مادر پدا چه الاتی مادر اکبرو به زور از خونه بیرون میفرسته مادر اگه من همین امروز تکلیفم با این خونه با اون عباسقابو اینا ولی مهندس روشن نکردم اگه روشن نکردم شما خودت می‌خواد بری که سالک با سرعت زیاد به سمتش میاد و جلوشو میگیره چی رو می‌خوای روشن کنی این خونه رو باید تخلیه کنیم حالا که اینجور شده چه بهتر خیلی خب تخلیه می‌کنیم تو جوش نخوا جوش نخوا هم اومد پس نری یه دست کل دیگه به او از این خونه باید پاشیم بریم چندش سالک رو کنار می‌زنه و با عجله از در خونه بیرون گندی تو بیابونه اطراف خونه راه میره و با خودش حرف میزن و خطو نشون میکشه یه نفر جلوی کرکره نیمه بسته یه مغازه نشسته و با دیدن گندی رفیقشو از داخل مغازه صدا میزنه و دوتایی فرار میکنن و سوار ماشین میشن بودو بیانده که داره میار. قندی به جلوی مغازه میرسه و قفل مغازه رو باز و کلکرره رو نیمه باز میبینه. سر شمشیرخونه که ماشین دست‌ها حرکت میکنه. قندی از زیر کلکرره وارد مغازه میشه. آژانس املاک باقری. باقری؟ آقا باقری هست. یه چهر که داخل آجانس میزنه و پشت میز باغریه روی سندلی میشینه ساعت دو بعد از ظهر. قندی گوشی تلفن رو بر گوشی رو سر جاش میزنه سیم تلفن رو دنبال میکنه تا به پیریز میرسه که دو شاخه داخلش نیست دو شاخه رو به پیریز میزنه که دستش رنگی میشه میبینه رو روز یه ش و یه ظرف رنگ شد رو بر میداره و کمی دیوار و سیم پریز تلفن رو رنگ میزنه برمیگرده روی صندلی میشینه شماره میگیره یهو مغازه منفجر میشه تمام سر و صورت غندی رو دود گرفته و كت و شلوارش پاره شده آژانس باغی کاملا دود گرفته و به هم ریخته و همه چیز شکسته غندی به سختی بلند میشه و از آژانس بیرون میاد هیچ کسی نیست با همون حال تو بیابون راه میافته یه خانوم با اینکه دودی جلوی سوپرگوشت بزرگ و شیک عباس آقا از ماشین پیاده میشه و به داخل سوپرگوشت میره سفشید من با عباس درخشش کار داشتیم عباس خانم با حالا شما کار دارم. هم بخواه در اختیارتون هر نوع گوشتی بخوان، هلان با اونو بودن مور رو تازه دیم نا من از آجانس محسوم مرام خدمتون سفکا خانومه؟ مهندس هفچی آو. آقا مهندس هفچی؟ حتما حتما آقای اسکری با یه درده با خانم میرم یا دفع بسقا و خانم مهندس افچهی سوار ماشین هاشون هستن که به جلوی ساختمون میرسن و از ماشین هاشون پیاده میشن مهندس افچهی یه دفره جمعه هم تو دستشه که یاد داشت میکنه بتونه یا آجوری؟ آجوریه تنسیم ها تنسیم تنسیم تنسیم خیلی کار کنید زیر بنوش هم با تو طبقه نسبی تعرض به آستر 50 مت داره. عمق پیاش چقده؟ پیراه بشه حضور کیه 2 بعد یه 50 تن طونم آخره کردن روش. پی زد زلزله هم داره. بله بله زلزله نه اما چی داره؟ که کولر رو بعد آب و برق و تلفن کاپچی کردن. پیش شلالم پرده میدن. ببخشید من خدمت منم. مس... خدمت. آقای غندی با سر و صورت سیاه و لباسهای پاره غرغر کنم به جلوی ساختمون می رسه که افج جلوی در ساختمون ایستاده و داخل ساختمون رو دید میزنه و متوجه حضور غندی نیست. غندی چند بار سعی میکنه از کنار افج وارد ساختمون بشه که ممکن نمیشه بالاخر افچ چشمش به قندی میفته. باشه میدن این جیغ سالک به کنار پنجره میاد و عباسقان به سرعت از پله ها پایین میاد و رو پرت میکنه روی خاک و سنگ بیا بود. حالش ما خوبه. وگه مظلوم گیر آوردی؟ خودت یک من با در دیگه چی بشه؟ اونجا اونجوری، اونجا اونجوری، اینجا هم که اینجوری. ببینم یه تصادف کردی؟ بابا کاش تصادف کرنے بودم. منفکر شدم. رفتم تو بوگا. داشتم سواره می‌گرفتم سه چه یهو دیدم گروپ واسا ته خدا چقدر بهت رفت کرد خدا رو شکر کن که چیزیت نشد حتما با یه صدقه بدی من به همه اینا گفتم به شما هم میگم ما با سکیبمون با این خونه همین امروز خوش چک کردیم خدا ربدنا زن از خونه دل خوش چک اتفاقا منم میخوام همین روز تحقیق ما با این خونه هم معلوم کنم عصبانی تو خوشه این بیچاره هم حق داره حقی داره مگه اکبر بهت نکو اکبر چی چی رو؟ اکبر فرستادم دنبالت که با یه لوله کش بیای. آخه این بیچاره لولای حموم و مستراش همه تریکید. دیوار خراب شد، ریخت روسری خونه خراب. آقا واسه چی؟ دو ساعت تموم آب شوره میکرد ببینیم بالا ببین. حال شو بفرمین دفعه 1 ساعت کن. می‌تونم بیا منزله. بله بله، منترم می‌بینید. بفرمه. در ببین. خونه به چه روز؟ چی همه ای همگی وارد خونه‌ی قندی میشن و به سمت حمام میرن که آقای مهندس مشغول تعمیر لوله هاست. یه دین 24 چلو بوده که به علت فشار زیاد ترکیده. من از اولش گفتم که لوله های وی سی فاضلاب این طبقان باعث فشار قوی باشه. مگه نیست؟ خانم مهندس اومدن خونه رو ببینم من میگم خونه رو بپوشین. ما تو فوضولی و تو چوبایی معنی؟ فاضل اینجا برای اومدن از این لوله های سیاه سبک سنتی زدن تنگ کار. از همه ها که باش میستندلی درست میکنم آخه چرا؟ خب چرا مثل همه از دوله های گالوانیزه استفاده نکردن؟ سالیکم صور ویلچه نزدیک در همام مالا چه ارز کنم؟ عجبه این پالیک های اینجا چی کار میکنه؟ آخه پازه لبه اینا به نابدونو چی کنم؟ نابدون؟ و میرید ایچه های آشفز کنه احتمالا ترکیده رسده به اینجا ملاحظه کنین تش ارزونی اینجا نتونسته تعامل کنه تمام محتویات فاضلا و هر چی که بوده مادر حال چیکار می‌کنید بکنید وقت بخش کنم عادی ولی عبدالسلام باشه که یهو تخگی پاشه من منید مادر چی بوده عباس آقا آقا دهاشو بنده من بودم خانوم ولی سیستم غلط کشی چرا توی مهندسی خونه داره شما مطمئن باشین که هیچ مهندس مسئولی نمیگذاره همچین سیستم ابتدایی یا ارزونی رو توی به کار وقتی میان جنس ارزون قیمت و کیلویی بهت میدن شما چیکار میتونید بکنید بله اول میان میگن که آپارتمان چهار اتاق خوابه میخوان که قناسی زمینو بپوشونه بعد میان میگن که قیمت زمین رفته بالا یه طبقه هم روش بساز زود بساز ارزان بساز بعد هنوز تا طبقه سوم تموم نکرده میان میگن که یه چیزی هم به کار روش. ای یعنی تمام این چهار طبقه رو روی همون پی پیه مصطی طبقه اول ساختن پیه مصطی کدوم خانوم ستونام فلزیه دم در دومت اخره شده عین فولاد میشه ادارت میزنه رفتن علی بجای این حرفا میگی چیکار کنیم هاشم ببریم بالا رو ببین یعنی میشه براله بپر می وشک اوا شما دیگه مونتکس مش با لباس رهبر سمفونی طبقه بالا و داخل خونش مشغول تمرین و خوندنه که بله ها بالا میان و به جلوی در خونه سردی که در بالاترین طبقه هست و خر پشته ساختمونه می موسیقی با همون حالت تمرین نیازه رو باز میکنه که یهو چشمش به قندی نه نگذس نگذس بده یه دید به موالیت بنداز. موال دیگه میتونی سلام سلام. سلام خانم. سلام سلام برادرجون. سلام ابو صابر. سلام چی شده تو توالت من؟ پایین دیوار و سخت خراش شدید سریم برد وقت خونه خراش حالا اومدیم ببینیم از توالی تو چه باست خانم مهندس یه چشمشو بالکون خونه سعدی که در از پشت بام ساختمونه میفته پشت بام باخش کاری شده است و یه هز هم وسطشه و سعدی تختم هم برای نشستن گذاشته خانم این سپینس آفریقاییه اونم پوانسیتا آقا سعدی اینا رو چه جوری این دور تازه میگشتیشی؟ شما 500 ویتیم میگم مادر ممکنه باور نکنید. من هر روز به این گلا حرف میزنم، براشون موزیک میزنم براشون آواز میارم. خیالی نمیکنی آقا سدی؟ ببخشید آقا. <تصفح> چجوری به گلای این باغچه‌اب میرسید؟ خانم یک سیستم ساده که تو قرن 4 میلادی رومی‌ها و یونانیا و ایرانیا تو باغچه‌شون به کار می‌بردند. حسابش رو بکنید تو قرن 4 میلادی. اجازه فرمایید علایمش رو. چه به نازه. این چیزی. سعدی میره سمت اتاقش مهندس سوال فرنگی رو چک میکنه قندی هم تو آینه دستویی بالاخره خودشو میبینه و وحشت میکنه مهندس با دست چند ضربه به قسمتی از دیوار دستویی که بات کرده میزنه آچارشو به دیوار میزنه که اون قسمت دیوار میریزه عباس آقا با خوشحالی مشغول نگاه کردن به حوض و باغچه هاست و خانم مهندس هم با لذت میون باغچه ها قدم دوستن ملاحظه بفهمی منابع آب اینجاست فشار به طور مسابی همه جا پخش میشه یک قطعه آب هدر نمیره همه چی جمع میشه دوباره به کار گرفته میشه زیر خاک یک صفحه سی سانتی پلاستیکی قرار داره که الانی ماله دیمونه سهدی میروه فلکه آب رو باز میکنه که آب نمای داخل حضر فبران میکنه همه خیزمشون ببینید این, این آقا باقشه شما خیلی زیباست ولی پشت بامی اینجا باید سیمانی باشه نه چمه این صفحه پلاستیک سی سانتی اگر یه جا شکاف داشته باشه مثل میمونه که هر روز داره بارون میاد نه خانمی غیر ممکنه. چون من دائما اون را بازبینی میکنم و اگه لازم باشه تعمیرشون میکنم ببینید خانو ما اینجا همه جور گل و گیاه دارید بعضی از اینا خیلی آب بکورن و بعضیشون کم مثلا این کلترو به مثل گاب آب میخوره و این کترمتو و این کترمتو سا چی کار داری؟ عباس آقا رو به همیری جی برم بازبینی روحلی میکنم اینه صفحه سا سانتی ا خیال میکنی همه خرابی و رطوبت تو این 4 طبقه ساختو نا کجا میاد؟ از کجا میاد؟ از کجا میاد؟ شما بگید از کجا میاد؟ از کجا میاد؟ از اینجا میاد. از اینجا میاد. تو خجالت نمیشه در میدی؟ پشتونو وردم دست تو رو مینزی؟ نگنن چیکار کردم؟ همش با اجازه خود شما بوده. تو به من گفتی تو تو میخوای بذاری سر پشت بونه که باصفا باشه. نگا چه بی داره دو پیدا شده میگیرمش در این سیستم سیستم رو در همه تو خرب، به بخش شما یه ذره شعور داشتید. اگه از هنر زیبایی چیزی سرتون میشود، هیچ‌وقت اینا نمیگفتید أشغال. من میگم أشغال أشغال. این أشغال باید جمع کنی هم امروز خوشگلی أشغال. البته خوب نیست. آخه خودش با اینا حرف میزنه، مزخرف میزنه، αρبه میشه به من میگه بی‌شعور. آدم میدونی بنده خدا چه زحمتی کشید تا اینا رو اینجا علام کرده. تو دیگه خفه شو. ای، مادر چون میره بالا. که میتونی من است اینجا هم که دیدین اینو اینعرضکن با ظاهر باتن میدونم که مشتری نیستین پس بفر میبرین اتفاققا بر عک چ ببینم با سقا ببین خونه وزنش خیلی خرابه اونق پیژ که کمه پراهنش ضعیع فر سیستم لوله کش ارزون ابتدایی هر حال یه خونه ای به ساز کامله درسته فکرم نمی کنمم به درد شما بخوره یه وقت مو نمی... با این همه یه چیزایی داریم میشه درستش کرد شما مادری که خویی نخورد؟ آره من کار گرفت. آبازی نوسازی رو دادیم؟ بله آبازی رو دادم کارش می گرفت. کامزه مفصل حساب روشی؟ مفصل کد آره. من نه گفتم چه دروغ میام؟ آم خوب اشغالی نداره میشه کار کرده شوداد کی تغییر میشه؟ از سویم الان وزودی باش وقت دانه موده جانم انگاری شده هم همه برگه اون که تغییر گرفت اینیش شب شده و یه مرد با ماشین بجلی ساخته میاد و از ماشین پیاده میشه. آقای سوسوری و صالح مشغول جمع کردن سفره هستند. دندید دستمال به دست و حالا تر و تمیز از حمام بیرون می آهد. با منکرین دارن در میزنم بله منم قندی جون باقر باقری باغری جون نوچرد ساله میریم آره جونم بسه بیام تو بالا بیمان خور بودم منم آیفون از دست قندی میفته آقا باقری آقا باقری از پله ها بالا میره که عباس آقا از لایه در خونشون رو میبینه حبوز به راه بله میاد و باقل رو تعقیب میکنه تا ببینی کجا میره. یاکی جا به جا دهون رسید شیرشم جفت دمون سیدو سالمی نوکرت اگه ولی چی کشیدم آقا ماغری آقا کونم را کسی بیاره وقتی باو وصلو تو رو بسابم معلومه قلبی جون غلام نسب دیروز تا تا نیت جاو کرده ولی پلیس تو بیاد تا آره چرا اینجا دمه خوب نمی تو قربم در بسته میشه و عباساقام کلافه میشه و برمیگرده خونش و دنبال راهی میگرده که بتونه صدای باقری و قندی رو گوش بده. بالاخره میره روی یه میزی که اکبر اونجا مشغول درس خوندنه و گوشش رو به دریچه کولر میشاستونه. فا چه رفتی اون بالا؟ جامش هم بره داره کاملا پاش توی دفتر اکبر هم سعی میکنه پاشو جا وججا کنه بابا چی میخوای این همه دفتر میخوابونه زیر گوشش اکبر ناراحت دفتر کیتشو برمی داره از خونه بیرون میدار. آفف باز چیکارش کردیم این بچه معافرم. زیکت رو بگیرم. کجا رفتیم ما را این وقت شب. مادر عباسقاو جلوی در ساختمون اومده آشفه. آشفه. بعد چیکار کرد؟ آشفه. من که داشتم همو بردم. پس نمیگه یا برم آلا سرو دیو بس که سر به سرش میذاریم بچه بس که نونورش کردی بس که پرموش کردیم آخه این بچه چی کار داشت به تو نشسته و خوب کارهای مدرسه که میکردیم حال ما نمیدونم چی کار کنم دستشون عباس آقا به مادر اشاره بگاری که بره بی خود سر به سرش با تو هم چی هر ونده ملکین این دوره برای. بله گوشی افتاده ای آیفون کار دستشون داده و صداشون از آیفون جلوی در ساختمون، کاملاً واضح شنیده میشه. حالا این کلم ترکیه بسناست اومده این عباس سوپرگوش خنجر خدا, خدا رو خطر اینجا دو تایی با همی رو هم میخوان خونه رو یه جا بالا بکشن ولی عباس آقا فقط یه مباشره حق نداره وکالتی نداره ما. معلومه که نداره هیچی نداره ولی روی که داره گرام ترکیه بسجل میکنه سند قبض مالیاتی اظهارنامه هر چی که بخواد بس بکنه منتظر همینی. که چیکار کنیم؟ داداش در ارض صد میتونی پرونده جهل و اصناد کلاورداری هر دوشنو دون این دایره جرایم زمین و مسکن حوضه استسحازی استسحافی استسحازی استسحازی استسحازی استسحازی همین مرتای همسایه دور آقا باقی بجمع شده من بودن استسحازی دیگه حالا حالا هرچی ما اونجا پرونده جنو بدبند میکنی تو هر دوی پشتک اصابی بزن یه پشتک اصابی بزنن. ولی من حالا اسم حوزه استفاضی نشنیدم حالا شما میگید چی چیکار باید بکنیم ما بهتون میگیم باید چی کار بکنیم اصلا ما واسه همین مزاحم شدیم کاری نداره که شما اول از همه برق خونه میره و صدا قطع میشه صالح با یه گرسوز روشن به جنب برمی‌گام مادر اگه یارو حالا نازشته نه شما نه خودش دستی به ترکیب این خونه بزنی اتفاقا به شما تموم شده شانستون زده که این خونه خیلی احتیاج به تعمیر داره خب مشکول چید؟ بسازینش تعمیرش کنید هرچی به سهم خودش هرچی بیشتر بهتر ما که به جون خود از خدا میخویم من هم اصلا حرفی ندارم اتفاقه من بدم نمیاد که بشه بالا عمل دو... عمل تو یه دو چهار تا کلایی بزن یکتر رو توی این خونه خرچ کنین تمومه تمومه تموم صبح زده. آقای توسلی و قندی و سعدی سوار پیکان توسلی هستند و دو تا کامیون و یک وانت پر از کارگر و مساله به ساختمون نزدیک میشن. سعدی زده زیر آواز و مشت مهدی بنا و همه کارگرها با تعجب نگاهش میکنند. همه با عجله زیاد مشغول خالی کردن مساله از ماشین ها هستند. <تصفيق> Time. front, front, front, front, یالا ماش میتی یالا ماش میتی یالا با میتی یالا ماش میتی بابا مادر هم به یه در میاد و با تعجب نگاهش می کنه آی بابا این جوری نکنه ببینیم چیکار همه کارگرها با عجله به سمت خونه میدن خداحافظ تو کارو بهاتم میگم. آقا من حالا بده. حالا اتاق دیگه زود یه اتاق دیگه بزنید. بریم. من چه کار کنم؟ سلام. چی داریم خونه رو تمیز خدا الهی عمرتون بده. آقا، گومت کنه بچه بجه می. یالا. یالا یالا برو. آدامون کوبون. بله این یکی بزنید. من با صفر وارد خونه قندی میشن و با سرعت مشغول جمع کردن وسایل خونه برای شروع تعمیرات. حالا بو گندو از این پشته میخوام خرابش کنیم بدین فرار پس بزن, بزن. آقا منده آقا چه بزن دیگه بزن کارگرها شروع میکنن به کندن دیبا. و اما خونه ی آقا و خانم توسلی که کارگرها دیوارهای اونجا رو هم دارن میکنن و آقا و خانم توسلی هم وسایل خونه رو دارن یه گوشه جمع میکنن آقای مهندس با یه بچه تو بغلش وارد خونه توسلی میشه آقای توسلی چی کار داری میکنی وارونه شکل؟ کله؟ کاری نمی‌کنم. با اجازه یعن باهای تعمیرات جزئی می‌کنم. خود اون تعمیرات چونه که بیارین. آقا من نگاه آقا من. همه سری مهندس رو به داخل حمام می‌بریم. یه دوت پارتی اینو نگاه این فاک بندای برای وقتی ورونه کنم؟ اون اونجا. اینا زین. نزن آقا نزن. کلنگ می‌زنی اونجا چیکارانه می‌خوای کنی؟ نزن اونجا کلنگو برو بخشی از صفت همه ها خونه توسلی کنده میشه و یک کارگر از اون بالا پایین رو نگاه میکنه اکبر همونجون بوده او رو باقات ببود که مستحجه قامل بنده آوردن دارن خورده تراب میکنه بیاده اگه در نیزا مگه ننبینی چه خبره همونجون بوده برو برو باقاته بوده برو برو باقاته بوده از اون را برو برو برسه گرده زود بیایی ها زده ها ش میاد انجام؟ امنه، نیجریه داره نمیشه. بگو. اونو برو آقای گاندی، آقای گاندی، آقای این چه باسکیو، چه سه باسکیو؟ خونه اونه خراب شده. یه تعمیر جازی توش میکنیم. سعی میکنی تعمیر جازی، این دیواره کنجدی زدین سرخ کردی، نه تراقبارلارم حساب کردی. نزن آقا نزنن دست میگرد تا چی کار میکنی؟ من میخوایم تو کوچه سام علیکم میخوایم پنجره بذاریم همینجوری میخوای پنجره بذاریم میخوایم بینم به شما چه ارتباطی داره مگه شما مسئول این خونه ای؟ از کیه؟ ناسلامتی این خونه رو من ساختم شما که نمیدونین من و بچه های دانشگرده شبا تا صبح چه زحمتی کشیدیم خب باسه همینم همه تو شدیم. اولیش که نمیان به آدم بگن که ما یه خونه چهار طبقه میخوام. سر هر کدوم از این طبقات به جون آقای صالح پدرمون درو من حساب وزنشو بکن، استقامتشو آبشو برقشو لوله‌کشیشو با وجود این شما از نظر فن مهندسی و هنر معماری چه عیبی میتونین این خونه بدین؟ چی؟ اکبر عباس آقا با ماشین به جلوی ساختمان میرسه. با عصبانی از ماشین پیاده میشه و به سمت کارگرهایی که مشغول علک کردن مساله هستن میره همه چیزو به هم میریزه چیزو شما اجازه داده بیان اینجا؟ بکنم با نکن! به شما جبستی! با تو هم! من تو ها بیخونم بیگم کار تحصیله! آقا چیم؟ شما را آورده خیلی بیخواد کرده! جمع کاریم برکن کار توی الورا را کار بر کار آدمو کار بکونی. من بریم به کار کارگرها با تعجب رو نگاه میکنن. کار ساعتی، کارم اینجا. بر ساعتی، آقای بفرمایید بر کار. بفرمایید من چی کار میکنم تو کار میکنی؟ ماشین کار میکنه؟ ای به تو چه اینا رو بری اینجا؟ خودتون خود شما گفتین یا کمی کامیرات جازی اش برید اینجا گل به اونجا. من گفتم یه خونه گل به مال اونجا ننه این همه آدم قطار کنین اینجا خونه مردم خراب کنن. خود, خود من گفتم چرا آ در رو از و میره طبقه بالا خونه یا کارت تعییر آقا آه آ کارت تعییر بفرمینون کارت تعییر آقا مفهمید شلوغش نکنم شلوغش نکن من به اینا گفتم بیارین اینجا تو خیلی خود کردی بچا موجعفزی چه موجعفزی خونمه خرابه دارم طبق قانون تعمیرات جازمی میکنم تعمیرات جازمی کدمه کارت تعییر هر بریم بیرون یالا کار کارت تعییر بفرما من شو اینا بدون اجازه من هیچ جا خبر برم تو خیال میکنی کی هستی تو چی هستی من من نماینده قانونی مالک این خونم به تو یاله پاشم ابلغ میکنم ازم رو کارت تفیله هر بیری برو من مستجر قانونی این خونه و رسما به تو یالف معذ میکنه ابلغ میکنم که این خونه متعلق به وارثه نماینده قانونی شما میشه اتوای نره من اعتبار ندارم من غیر قانونیم ابو سقر نزشو که دهن من واره ها من نمیذارم تو اون مرتکب دلال قانون اساسی خونه رو یه جا بالا بکشی خودی به من تهمت میزنی نسا به من داری تو امت بیزن خورت بی این ده بره ده بره بره بره بره ده ده من تو امت بزنه اباس آقا به زور کلا رو از دست مشت مهدی میگیر و میخواد به سر غندی بزنه که غندی با استانبولی خودش رفا میکنه اباس <تصحنت> آقا <تصحنت> <تصحنت> <تصحنت> <تصحنت> <تصحنت> <تصح آبادی آه... فرار میکنه و میفته روی وسایل خونه تو. عباسقا با کلنگ بهش حمله میکنه و میخواد بزنتش که قندی جا جاخالی میده آقا و خانم توسلی هم میان عباسقا هنوز دنبال غندی و غندی هم بالشتار رو پرت میکنه سمتشو فرار میکنه آقای مهندس هم میان غندی شرا خوابه و عباسقام پلنگش رو بلند میکنه تا به سر هم بزنه شرا خوابو شکسته تو دست غندی و اون بازم فرار میکنه اپس آقا میاد باقایی سرش تا با کلنگ بزنه که این بار آقای توسلی میاد جلوش و مانش میشه شمست پاره شما کنم شما کنم شما کنم شما کنم شما کنم شما ای این کافر یکی جنودویی کی طرف تھا کہ یہ خراب نہیں دے پرتاب پای گندی هم چهار دست قرار برای میکنه عباسقا بازم میخواد هم میکنه که آقای مهندش رو مش مهدی جلوشو میگیره گندی پشت مادر عباسقا قایم شده سعدی یک کارگرم تبسلی قشت رو به گوشه اتاق میکشونه یواش یواش به دیلش بری کنیم بری چرا؟ تراف از صبح تا شبین همش میافتن بدونونه چرا نمیشنن دو کلمه با زبان رو خوش بهدی کردن گرفتارشون رو بگن خوشکگلات حل بکنن اک زن محلهس کنار مادر نشستن رو زمین وشونو هاشو می ساله که پاشه یه توردار سفید رو میندازه روی تنها شمدونی باقی مونده و اکبرم کنار شیشه خورده ها رو جمع می‌کنه چرا دیریه میکنی؟ این تنها چیزیه که از مادرم مونده خب عب نداره یه چرا بیشتر نیست اینجا این همه اصباب اساسیه هست مال مادرم اینه نه مادرم عباسه ها بخ کرده کنار میز غذا نشسته و لب به غذا ها مادرم تو آشپزخونه سبزی پاک میکنه سلام سلام بادر سلام مادر سلام مادر. از زورت حال این مجسمه گرفتنش از لب به قضا نزدیم نکن رو سکتی خدا مرگم بده. این حرف چیه؟ خدا نکنه زبون بگیر. اکبر میره در باز کنه سلام آقای مهندس میبخشونیم با آقا بفرمایی روز شده بی بیزمت موز ما رو مرمد بفرمایید اکبر فاکتور ها رو روی میز میسره چی اکبر؟ کارگرام اینا چیه؟ sure. موزد آقای مهندس هم یه نگاهی به فاکتور ها مندازه. ورا اون با از بالا یا همون اون داره وردن بگیره اینا به ما مربوط نمیشه اکبر میخواد فاکتورها رو برداره که عباس اقا دستاشو بگیر فاکتورها میزنه با دست فاکتورها رو ورق میزنه و اونا رو پس میزنه میگم بی به بفرمایید از هر کی که شماره ورده بگیریم اینا به ما مربوط نمیشه ها بچاش بچاش بریم کارگرها به رهبری مش مهدی از پله ها بالا میرن ام نشبیتی. خانم توسلی درو باز میکنه سلام شد می‌بخشید مزاحم شدیم. آقا تشریف دارن؟ نه خیر، تشریف ندارن. این صورت حسابا خدمت شما. من که از این چیزا سر در نمیارم، استاد. باباساقا نشون دادین اینو؟ بله، گفتن عبالهیا بگیره. پیش آقای قندی ساله رفتین؟ نه. خیلی. خب پس بهتر اول بفرمایین بالا. با اونا صحبت کنیم بفرمایین نوسته. بله، بله. بریم بالا. کارگر ها از بله ها بالا میان و به جلوی خونه یه و سالک میزن اکبر آقا میخواد زنگ بزنه که زنگ در اتصالی میکنه و جرق میزنه سلام علیکم آقا میبخش موضعیم شدیم فرویش؟ بفرمای موزی ما را مرمه کن این چیزا من مربوط نمیشه آقا لطفاً بریم پولتون از همونی که شما را آورده بینید اه آقا مشت مهدی و کارگرها به آخرین طبقه و نزد سعدی بینند آهای بسید آها، بس پوله آه آه آه آه آه آه آه آه. ما چی شد؟ آها، بله. بس شنو قش میکنید؟ سلام علیکم قربان. السلام که قربان. سلام باش. قربان جان قربان. ما هستی گشیم شما رو پیدا نکردیم. این بود که این جوون قضیه صداش بلند کرد. باید ببخشنا. والا چی میخوان؟ چی میخوان؟ والا دیگه غروب شده. بی زحمت مزه ما رو مرمت بفرمایید. زحمت رو کم کنیم. چی؟ اوه. دوباره ما راجر سه زار تو قیمتش شین های ماند. عباسقا آبا همه حرف رو میشنن آی تصی؟ آی تصیلی طلاه غندی رفتن کلینیک چقا اینو کارگرن مازشون رو میخوان. چه پول اینا که کار نکردن تو اومدن وساالشون رو پنج کنن و که قولدار رو و تمشون رو ریخ بیرون. اتفقا ماش رو شاچی هستیم کلی که چه روز دست سای خونه ما آوردن حالا ماز تو هم تش بر پایینن خودشون میگیریم و شروعمدن کارو تاثیر کردن و بعد توقع دارن که ما پولش پرداکنیم این درست مش بدی؟ علت خدا بشریتون هرروم زاده ما بریم, بریم پایین ننظر چ میگیریم بیاید. کارگرها از پله ها پایین میان و دوباره به جلوی خوونه اباس ها میرسن مشمتی میخواد در بزنه که یهو می ترسیم. با از دسته همانشون ش هستیم. هم دست اوا چراته خونه رووردنکنو خراب کنن؟ هم دست اینا چه بدون اجازه ما بر ب ها گوش کردن زنن خوون دو در رودا اون شدن. و جمع کنیم بریم بروون ما لازم نداریم. بریم آب بریم. ای بابا یه نه چه بودی ما هستن است. و میتیو کارگر آز داره سختمون بیرون میاد. از ما وارد جام کنیم سر باید بری. دلار. تو ندار پیچ اومه. دلار. دکولایی ماردنی. تو ندار. آقای توسلی با ماشینش سر میرسه. یه پاشم بانداش شده است سلام هشمتی سلام آقا بنا دور باشه خدا رحم کرد مشمتی. بله آقا، خدا رحم کرد خدا به همه رحم کنه آقا. آقا. چی شده؟ مش آقا این رسم روزگار نیست. احوال این خانه مزه ما را که نمی‌دنه کی. میخوان علیه ما شکایت هم بکنه. شکایت مش چه شکایتی؟ ما به اونا بگیم. اگه تا فردا تکلیف ما روشن نکنن، ما ناچار خود هر کاری می‌کنیم کجا؟ ببین، روتر گفته باشم. لطفاً من درستش می‌کنم مش میتی. صبر کن. و کارگرها سوار کامیون میشن و میگن. کازه تو دشتشو روی میز جلوی عباس آقا میزنه بیا آشک دوست داری برات پختم از صبح تا حالا که چی نخوردی لب نزدی بخور گفتم بخور قاشق رو به دست عباس میده عباس گوش به ببین چی دارم بهت میگم تو پسر بزرگ منی بابا تو تمام عمرش آزارش به یه مرچم نمیرسید یه لغم نون حروم از گلوش پای نمیرم زیر بازارچه همه ازش تحریف میکردن لا لا لا لا همه میگفتن عجب مردم اوه چیکار می‌کنی قط تو غذات واسه فشار خونت بری. این حرفایی که غنده میزد یعنی چی حالا دیگه همه مونده که همه بیان بگن قباسقای درخشش پسر محشت رجب میخواد کلابرداری کنه خونه مردم رو بکشه بالا دروغ مادر دروغ کتره میگن واس خاطر همین بود که میخواستم چون چه درنه دو بندرش جر بدم خوب خوبه داد نزن آش تو بخور حالا اونیچ این کاری امروز چی خدا رو خوش میاد آخه مگه خونه خراب نیست مگه تعمیر نمیخواد مگه عمل بنان امیرش کنن. پس چرا نذاشتی؟ یعنی می داشتم تعمیر می کردم بعدم راحت تر داشتن لب داده می, می من کی را قضا بگی تو خب، می تونستیم از داشتن دکو مداه؟ تو آشی خب حالا میگیم می نصاب کرد تابست مش تقصی بدبخت چیه؟ این زبون بس ها چه گناهی کردند؟ چرا مزدشون ندادی؟ من بدان پس کی بده؟ مگه تو و خونه نیستی؟ مای منو وارد چ چه فرق میکنه؟ آلا همه مونده همه چه پر کنن بگن عباس آقا مزتمونه بالا کشیده پولمون رو خورده حرفم بزنیم میگم میرم از دستتون شکایت کنم دیگه آبرو واس ما میمونه و اما خونه قنداره که شکایت میکنم شده چرا تو نازک می دنید به صبته کردن زندگی ما میکنم. رو میکنم پیچی رو شکایت میکنی شاکی از این کارگران و اونا چه بر بود کیواجی دعوا داره چرا متوجه نیستین این ما بودیم که نفتیمون رو برداشیم آوردیم اینجا حالا کار نشده به اونا چه؟ من مطمئنه مگه برن شکایت بکنن این مایم که قانونن این وسط محکوم میشه بشیم آقا محکوم بشیم چه بهتر از شر نیخونیم درنتی خلاص میشیم بیریم پیکار ما محکوم میشیم نه؟ چانسالو از گارا داریم مفت و مسلّم کرایه میدیم به این دیوانه توی هم چه خرابه ای داریم زندگی میکنیم میخوام تعمیرم کنیم نمیذاره بعد ما محکوم میشیم ببینم می آقای توسلی مگه این آقا باقری نگفت که تا میتونین تو توی خونه خونه ییشه یک قرون چه میذارم 10 پول خرج کنی خب خرج کنیم خرج کنی پول اینا هم بدین اکبر با به حالت دو از در ساختمون خارج میشن و به سمت ماشین میرن اکبر ماشین رو روشن میکنه و راه میافته. خاله توسلی هم از پنجره اونارو میبینه. آرتجی رو قطبوس. شیخان توسلی من که رفتم حسابام با کارگرا تسویه کنم. شما هم دیگه خود دانو. جواب به اون پا کجا میرین؟ آقا و خانم توسلی با سعدی و قندی از در ساختمون خارج میشن. سعدی و قندی سوار رنوی سعدی میشن. اغل خانوم تا هم سوار ماشینشون راه است. به دلیل رانندگی بعد میگی آلا همه سوار ماشیناشون دنبال ماشین کارگرها. باص، شال رو بپوش. میگه تو همون چرا مینشینی؟ اکبر جلوی یه قهوخونه نگه میده. علو، سلام علیکم، چاکر باش تو ندی کجا. پای شما همین الان رفتنی ولی همینجا. اکبر دنده عقب میگیره که میخوره به جعبه‌های یه میوه‌فروش سیار و گازش رو میگیره و راه میافته. های کوری زدی موشین داخلون توسلی هم به قهوه میرسه سعدی و قندی هم باره نو میرسن محمد خواه هشمتی برای بچه ها رفتن عباسقام رفت اونباله شما باره به قردی دندقم میگیره که میخوره به بساط میوه فروشه و اونم حسابی شاکی میشه و جعبش رو پرتاب میکنه بازداری خوده موزه باشه دمدم های شبه و کامیون کارگرها می داخل داخلی یک فرمی عباسقا کامیون رو تو جاده می بینه اکبر دنده دقیقه می که نزدیک با یه پیکان تصادف کنه آقای توسلی هم بنز قدیمی عباسقا رو می بینه که داخل جاده فری حرکت می کنه اونه هاش، اونه بنز عباسقا برو بس حالا دیگه پشت کامیون و هی به کامیون چراغ میده و بوق میزنه مشمکی میگرده بابا گره گره گره مشمکی هم کنار دست راننده کامیون خوابش برده مشمکی میگرده بابا حالا دیگه رنوی سعدی و پیکان توسطی هم پشت کامیونه اکبر میخواد از کامیون سپس بگیره که یه ماشین از روبرون نزدیک که بخوره بهش که اکبر در آخرین لحظه از بین کامیون و اون ماشین لای میکشه حالا ماشین هستی که بخوره به رنو که غندی هم ماشین رو نجات میده همچنین پیکان توسلی که خانم توسلی با چرخش کامل فرمون ماشین رو از مسیر ماشین روبروی کنار میکشه و همه ی ماشین ها به زور دستی و ترمز بالاخره نگه میدارن حالا سه تا ماشین اهالی ساختمون کامیون رو دوره کردن و چراخهاشون رو روی کامیون انداختن کارگرها بیل و کلانگ به دست و با کمی ترس از کامیون پیاده میشن مشت مهدی به کنار کارگرها میاد که نور ماشین ها اجازه نمیده آدم های داخل ماشین شناسایی بشن شما چی هستن؟ اجور ما چی میخواهیم؟ به معش متی ما را نشناختی؟ آخه ما شما رو نمی‌بینیم. چه چطور نمی ما که چلو بسدی می‌نینم، به بغزدی نشنیدی؟ ها، بله، بله، شناختم، ده. شناختم. به منش من کاری ندارم اینا به شما چی گفته، شما به اینا چی گفتی؟ من میگم اگه ما بین خودمون حرفی داریم یه اختلاف نظری داریم به شما هیچ رفتی نداره. بله، هیچ ربطی به شما نداره. آبوسا رو به سمت مشت متی میام. نشنیدی، یعنی ترسی بده. چه ها شده دمون سال که احباس آقا بیبوسردیم تازه امروز با هم آجنا شدیم به مولا قسم ما طالع آزارون به یه مورچه نرسته بعد هیچی هم نمیخواییم حقش هیچی هم نخوردیم ما میگیم دعوای صابکارا به کارگر جماعت هیچ ارتباطی نداره اما شما کار کنید بعد موضعتون رو بگیرین دیگه قربون تو برام مش میتی تفاهم شده شما باید ببخشید بله بله مش میتی اختیار دارین ما کوچیک شما اید. بزرگ مایی خب ما از اول همین میگفتیم ولی کسی گوش نمیده اختیار دارین خدا شاهد خیلی ناقابله ولی خب این بنده خدا ها خدا اله سایه شما را سر ما کم نکنه. اینجا که نمیشه قربونت بدم. بفرمایید بنده منزل تقدیمتان. مزایم نمیشه. شاید نمیشه. بفرمو خدا نمیشه. نه خدا. همه خوشحال و خندون به جلوی ساختمون میرسن. ماشین متی روی صندلی عقب ماشین عباس آقا نشسته و نمیتونه در ماشین که قفل شده رو باس کنه. ما معنی بفرمای بفرمای آقا یوم بفرمای پایمان دل خویتی خوش <تصفيق> <چه سواز؟ بپرمی؟ تصفيق> ایلهایی که ما در خیر بدیم گفتم آمده شدن اذیت شدن آمیانی فازی رای آدایی بخویم رات خود را بشه خدا قبر آمیانی بفرمای بفرمای باشه بیا برویم بیا برویم بیا برویم بیا تاپ غندی به مش کمک میکنه تو از ماشین پیاده شه اینجا بالا آقای پاین ماست بله قربان بفرمایید پای منزل رو آقای اون قدمتون رو توخ می‌چشم خام توسلی آن توسلی بفرمایید آی سعدی کجایی بفرمایید بکنیم همه اسراار دارن که کارگرها به منزل اونا برن کارگرای hmm. بیچارم گیج شدن خواهش میکنم شما میگید پای بابا بیا بیا باید همدیگرมาช کنی منم گفتم ای دیگه لا تو باش دیگه هر مارش ما دربش هم تو من خوذی کفه بازم من کوچیک خودمیام مرزا عثورم خراب من نورد به هم دیگه رو بغل میکنه من نود من بابا حساب حساب من آقای باشه. همین مش مهدی و بقیه کارگرها جلوی در روی زمین نشستن نا والا خوبه. عباس آقا. عباس بفرمایید. شما اجازه بفرمایید. آخه اینا کسیف سیف میشن؟ ما پر از خاکیم. این آقا چی میزنید؟ بفرمایید آقا. خواهش می کنم پس اول اجازه بفرمایید روی صفا بدیم بعداً. بچه اونج بیا اینجا. همه کارگرها بلند میشن و به سمت دستشوی میرن و اولین نفرم مشمهتی وارد دستشوی میشه حالا مادر و اکبر و بقیه خانوم ها داخل آشباس مونن. دارچو ایدام پیشی نه نه نه اون تو نماده قربونه برام لای اون به از قربونه برام خامنه بونه برام علائم من زد نمی نم مزد جو اونکه سعی بود تو پیش دستی کار چند همه چی می دارم همین مادر جو چی کامه؟ دارم دارندی دارم خودمان دارم پس بیار مادر دارم یه چند تا هم مادر جو چ چی بهشون بدیم؟ شام اگر میخواین هم قیم سبزی دارم هم از ما کوفته داریم بعدشه پس سنجمون به اون بسته قذای مودیکت نیست می تسم بهشون بر من میگم بهترین کاری که پیتزا هم برگر بگیریم خیال خودمونم راحت مادت بعد از اون همه غیل و قال آب حالا بیام بهشمون پیتزا هم برگر بدیم پیتزا هم کدوم هم کسییر یه رو خف بدیم یه به پس سوپم چافیری بیشو گسیچیل نفر چرک کرد و راسته خطم از میگه رگیشش میگیره قشنگ صافش کنه شیشک تاجوری بشه سوسموسه بد نده با جल्दी برو جल्दी بیا مادر ریش بگو آچار ولش کنه سوییچ شد من خودم میرم نمیری هر ببینی الهی سوییچ ببین اجوا مگه نمیبینم تا ماش بده حالا بس اون درد نکنه اجوا بده تو برادر خوب دیگه تو یه خونه قهر بده مادر عباس آقا بدون اینکه به مهندس نگاه کنه دستشو بالا میاره مهندس هم دستشو بالا میاره تا سویش رو از دست عباس آقا بگیره که دست همدیگه رو لمس میکنن و محکم به هم دست میدن خیلی <تصفيق> بسیم مهندس سویش رو میگیر و عباس آقا با دست به شونش میزن و میره <تصفيق> مادر هم با دیدن این صحنه اش میگیزه یکی از کارگره هم حسابی تو دستشوی به خودش عط میزنه مهندس <تصفيق> احالی ساختمون با ظرف میوه و شیرینی وارد خونه عباس آقا میشن مادر و خانم های خونه تو آشپسخونه مشغول محیا کردن برنج شام هستن آقایونم دور هم نشستن و میوه و شیرینی میخورن بخورون بخون، خجالت <سؤال> که بخون. راحت باش آقا بخون. بخون. بخون دیگه. واسه شما. بخون. چی یک دل جونه دلم وای مابی قرارم. چی یک دل جونه دلم وای مابی قرارم. ما از دوریه و خاطرارو بنداز. وای قل مان دیته تو. صابر هم مصابر. وای قل برمون در گوش مال بسی میار بای سر و فاکتورها رو ازش میگیره حالا دیگه گوشت چرخ کرده هم رسیده و همه دارن آماده درست کردن کباب میشن دو نفر گوشت ها رو داخل دیگ میگیزن یکی پیاز رنده میکنه یکی تخم مرغ میاره یکی سیخار رو آماده میکنه مادر هم برنج آبکش میکنه اباس آاقام لباس قصابی پوشیده و گوشت راستر رو خرد و کبابی میکنه قنی هم داخل گوشتگویده تخم مرغ میزنه. خانم ها سفره رو میشین. حالا قندی و اباساوا ها گوشت ها رو به سیخ می به داخل سفره هم که سالاد و سبزی خوردن تازه چیده شده. اکبرم دو تا پاشت دوغ میاره حشتو پایید حشتو حشتو ها 8 حاضر من رو بکشم آو گاندی آو سایدی کبابا حاضر بکشیم میگه کبابا حاضر چطور رو بکش میگه بکش میگه بکش آو گاندی سلام چه نریخته که میگه کبابه نریخته که نریخته بکی کشکه میگه بکی مگه کشکه اه. حالا دیگه خانم ها مشغول کشیدن برنج و تزیینش با زعفرون هستن آقایون هم دونه به دونه سیخ های کباب رو لایه نون میذارن مافان مافان سفره رنگینی چیده شده و حالا همه به کنار سفره میان آبصوکو برای کارگرها برنج میکشه. ببن، ببن، ببن، خیلی مزایم اینو خوش میکنه. سر سفرهتون سب باش. آقا بفرمایید. قربون دستتون. اوقا، آقا پولاوسی نكن. قربون دستتون. به به به. چرا بعد واسه اینم کباب. دست آشقی شما شما یالا اینو یه خاطر شما دیگه ماش میتی بخور دیگه تارافت نکردم چرا گچ اونجا این عاشق من چه رفت اونجا این عاشق من بده اسد آقا تماس بگیر بابا کجا شما این سالعه این بیچاره همین طور بلش کرد اون بالا اومد این پایین مهندس قندی میرن دنبالش سالعه که به زحمت میخواد با ویلچرش به ها پایین بیاد. جانم، شامیدی چیکار می‌کنی؟ الهی، الهی عصب پیش مرد الهی من بنیرم و داده تو رو نشنوم. بیا بالا. بیا بالا قور کونات برام الهی بابام. ننم همه به احترام ورود سالیک سر سفره بلند میشه موازه بشه یا الله بفرمیم بفرمیم حالا دیگه شان تمام شده و سفره هم جمع شده و همه دوره هم نشستن و چاییو میوه میخورن خدای اشاره شما نگه داره خب دیگه اجازه میفرمیم مراقصی ایبا تصریف داشته باشین حالا که عجله ما که نتونستیم کاری بکاریم قابل شماره داشته باشیم <تصفيق> اختیار داره دیگه بهتر از این چی میخواستیم ببینین عباس آقا آی مهندس وضعی خونه زیاد تعریفی نداره و اگه زودتر دست بکار نشیم خرابتر میشه کار ما بناییه ما در خدمتی. حالا اگه فردا فرداسو خدمت میرسیم اگر نخواسته... اگرم نخواستیم اگرمگر دیگه نداری او سا. ما فارس رو منزرتیم. شما آقا، تأثیر کنیم که وضع همون و تو و آشپزخونه هیچ خوب نیست. آره عباس آقا، پیر شلای مادر. ولابد جون چم. ما خیلی شرمندهتون که با همچی مخمصه گیر بیافتین. باشه، ما حرفی ندارم. اون تو شما فرض بیا، آقا مادر سلام. تو چه این کارو فیصله تموم کنیم بره. خدای لای عمرت زیاد کنه مادر. برید اجازه می نامش ببینید من شما بله طبق این صورت ها بنابو. این دوتا چک برای مسئله اینم برای موز شما و آقایون کارگران دوتا امزمین بندازی درسته دست شما درد نکنه حالا چه عجله بود بایده حساب بکنید بذار و چه کارو بهشون قد کن من خودم کنم اکبر اونا تکبر تو چی به اکبر اکبر جو هیچی. تو هیچی نمیذارم بری نمیشه عباس آقا حسابش که معلومه چه فرقی میکنه میخاید فردا شما بدید بله عباس آقا تعارف نکنید شما امشب باندوکافه دو زحمت افتادیم میگیم جزوی روز به ما باش صبح شده و غلام رئیس بنگاه مهتاب از ماشینش پیاده میشه و به سمت سوپر گوش آقا بله بهترم. غلام آره آقا، غلام رو و به سمتش میاد. گوش روی صورت غلام جای دو تا زخم چاغوه. نوشونه ای والله اپس سالیدن اصلا با این دم دستگاه سالها کاسبی و معامله و زده بند بعد بزین تو بیان طرف فزت بندازم برم چی از خوشا تو رو می خوری حرف میزنی اگه دیروز مستاجرای شما تو خونه تو همه نشستن؟ من نرفتن کجا رفتن هم سرجاشو نشستان مگه نرفتن عمل بنده نه ایوردن اون مگه دعواتون نشو چرا مگه بعدا ماشینی نکردی خوشی کردی ماله خب ولی کارگرالی چی داد خب، اونها دادن چه, چه فرق میکنه چه فرقی میکنه هیچ فرگشینه که اونا میتونن این پرداختی راحت بزنن به حساب اول این قسط خونه دینامش نقشه بود مردی سری کجا این کاری این باقریه ناکه سخت کرده تو کلهشون تو این لونه ای که نشستن باید پول خرجش کنن، تعمیرش کنن تا بتونن جوشورش بالا بکشن صاحبش بشن مگه اعلیچیه والا بچشان اعلی چینی تو یه ثابتم چی چی میخوای ثابتم تو چی دو دسته داری؟ سندی مدرکی قواله ای وکالت نامی تو هیچی نداری. اصلاً بگو چرا من آدرس رو پول کارگر رو بدم. رو کجایی؟ باش. کجایی تو؟ من چه حطا زیر پام علف. آبا نمی‌دونی چه رفتم از بنگاه غلام با کت و شلوار و تو و دستش به سوپر میاد. لا خوبه؟ جام خدمتون معرفی کنم آقای اصدالله رام می جوزف جوز فکر دست دیزی آقای رام جاش بزنید ببر بگویی که از هست این هم حجم قطعی تفریه خونه اصغر یریش پروفوسوریه مصنوعی به صورتش میچسبونه چست کنه و سرشو به رعشه می داز و یه اینکم به چشماش میزنه زنه اصغر یا حالا بهتره بگیم الله رام به همراه عباس آقا با ماشین به ساختمون می رسن ماش و کارگرها به پشت بوم رفتن و سعی میکنن منبع آب رو که بالای سقف خرپوشتی سعدیه روی پایهاش هاش جا بندن. کار داری میکنید؟ این هم آدمو رو سقف، سقف خراب میشه. الله رام به پشت بوم میاد. عباس سلام. عباس چه دو تا پای تانکر دیوار و سقف ترک خورده. اون وقتی آمدن زدن به جاش، کف توالت حالت مناشلاش می‌دونی؟ باشه. آوان잖아. آفرین. ماشپکی، اوصمانو دست, او دست او ببینم ببینم با با آقا. دست چی کنیم ببینیم آوان صاحب چی می‌گه؟ چی بریم پایین؟ طبق دستور آقای اسدالله رام، ورثه آقای رام که اینجا شخصاً صحیح سالم دارن، از امروز به بعد یه کار این اینم اجرایه و حکم قطعی تخلیه خونه که طبق ماده شیشه و اندسته قانون مالک مستجر بنابرای تقاضایشون صادر شده مبلی بر این که هرگاه مورد اجاره محل سکنا کلن و یا جزن در مرد خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و برای بهداش و سلامتی مزهر باشد خونه رو باید تخلیه و خراب کرد اوکی <تصف> بر از اومده همینه بگه اوا بری ولش کنی ولش میکنی کارگرها <تصفيق> <تصف> منبع آب رو بی خیال میشن و از سقف خرپوشه پایین میاد آوا تأثیره بریم پایین بریم پایین ما پایین ما کجا پیش تقریبا موجود شد ما شاء الله عباس آقا شما یه جور حرف میزنان روزا یه جور خیلی بااستعاده میبخشه بریم آوا بریم داشمت جون وایسا وایسا قربونت بچا رو بگو وایسا سلام علیکم آقای رام. شما با اون مرحوم رام دامدار چه نسبتی دارین؟ خخ خخ. دچالشه؟ خاله. خاله خاله. خاله. آبوز قشناس نمی‌یاد آقای رام رو بگندیم؟ ببکشیم. یعنی شما از فکر فاملاه همون رام دامداریم یا یه رام دیگه؟ چون مبش... این تو چیزی نه همون رام دامداری که دامداری داره تو سجلم شغل من می‌شن. حاش بتی. دل اون شکری رو بروته. چرا خوب؟ یعنی چرا؟ دل به فاهم. آ. چرا این گانده؟ خوشت میوکم آ چک های قندی رو میگیره و دستشه که خودش رو در میار و شروع به نوشتن میکنه. بیا، ماشیت. این مزه دیروز تو امروز. این سوت ششام بده با آقای اون. اما ابوسقا این چک ها که حسابش دیشب بسته شد که. لازم نکرده من حساب میکنم نمیخود بدی. بگیر نه. جیبه از جیب ماشینمتی ساده نشه بس جیب بذارم بابا اینم بره اباوات خسارت که به ملز زدن من گفتم بگیرن ای مهندس چی میگه این داشل عباس آقا چیکارو پس نمیده و میره شب شده و آقا باوری با ساگی بلندش به ساختمان نزدیک میشه و همسایه‌ها از پنجره میبیننش جواد جواد ببین جب کی اومده جواد آقا باوری باست باست شاکرم آقا باقری خیلی باخلصید طبقه دو گوشه مندی بالا از پله ها بالا میره و عباس آقا هم از لایه در خونه شون باقری رو میپاد سلام علیکم خیلی چاکرم سلام علیکم عباس آقا به داخل خونه برمیگرده و دنبال راهی برای فالگوشی استادن و پسرش هم تلویزیون می میبینه بس این بابا اومده میگه هم بابا صدای تلویزیون رو کم میکنه و از پنجره وارد حیط خلوت میشه اکبر صدای تلویزیون رو دوباره زیاد میکنه عباس آقا نردبونه که پیدا میکنه و ازش بالا میره تا به پنجره خونه همسایه میرسه این خونه کجاش قابل تحمیدی؟ کجاش مزرعه؟ حاضر معلومنی با چی رفته دادگاه؟ چی تو دستش بوده؟ هیچ به جون آقا غنگی قسم به مرگ جب بچه هم؟ سر تا پای کار اینا همش حقبازی و کلکه دستری من به خیالت جمع باشه اینجای با ماشین کسی کار نداره تازه من میخوام ببینم چطور فقط بعض اپارتمان های شما نفر اینجوریه مال خودش چی حالا شما میگه ما چیکار کنیم؟ میگه نمیخواد دیگه ماده کی بنده سه اینا دوباره خراب کنه. خب شما دست پیش بگیرین که بس نيو. خب خب. حالا وقتشه که یه سر به شش بهش نشون بدین که بفهمه با کی طرفه. خب خب. سیستم عیادتش وعده کن. دستش بزن تو حنا. دستش بزنم تو حنا. باقری به مردا اشاره میکنه که سرشون رو نزدیک بیارن تا رو بگه. عباس اقا هم هر چی میکنه بشنوه که آقا باقری چی میگه متوجه نمیشه. بحبه بحبه آقا این کی داره؟ و این چه کوپی من روشن آقای یه قندی این مزخرفا چی می‌گی آقا باقری چه, چه مزخرفاتی آقا توسلی به خدا قسم آقای قندی همه این بلاها زیر سر شماست این آقا رو برداشتی رو اینجا که چی بشه؟ یه روز بیاد اینجا به ما بگی که خونه رو بسازید آباد کنید یه روز بیاد اینجا بگی که خونه رو بزنید خراب کنید آقای جوش سلید چند دار بزنید آقا ما کاری که خاصی بدی نداره آره واش که بفهچ منافع شما ما نه خاص اینکه نخاله آقا اصلا ما رو سنانا ما نخواستیم اون منافع مال شما چه منافعی ما چه منافعی داریم این شما از هستین که میخوای روی اون مردی که دلال غلام ترکی رو کم بکنیم. ما همین وسط آقا انپر و منتر خودت کردی آ روز چندم بچا روز آقا باوری میخواد برای توسانی شاغو بکشه که قندیونه نش میشه چرا شاغوی خودت نمیترسونی این آقا بنم کو به ده بزنم آقا اصلا به شما ایجان زده بیاد اینجا مشاور عملانی املاهی؟ ای ای؟ نمیداری؟ ای دماس سلیکاتالاند کس؟ ما در خدا نه بچه اش. ایکسومان خدا نه بچه اش. ایکسومان اکتالاند کسی؟ ای دماس سلیکاتالاند کس؟ ما در خدا بچه با داد آقای سعدی سقف و دیوارهای خرپاشته شروع به ترک برداشتن میکنن و کنده میشن کل خونه داره میلرزه باد شدیدی هم وزیدن گرفته باغری در خونه رو باز میکنه و فرار میکنه وای اباسه از روی نردبون پرت شد پایین به کنار پنجره میان و عباس آقا رو میبینن که روی وسایل حیات خلوت افتاده آخه توسلی دنباله یه کتاب توی قفسه های کتاب خونهش و از چهار پایه بالا میره کتاب رو پیدا میکنه که ناگهان تمام کتاب خونه شروع میکنه به لرسیدن و توسطی سعی میکنه جلوی ریزش کتاب ها رو بگیره که کتابخونه و بخشی از دیوار با هم از جاشون کنده میشن باز هم با شدت زیاد فوران کردن و آب می پاشن توسلی <تصفيق> و خیز آب می شن آقای مهندس و سعدی و به کمک خانواده توسلی اومدن تا دیوار و لوله ها رو درست کنند. قنفی هم گل لگد میکنه و توسلی هم که سرش شکسته و یه چشمش بانداش شده است آجاب میشه سر بشم سر بشم سر, سر سر سر ندبینم آقا قنفی گل هم سر بدم بابا جمعه بسه هم بیارم بسه هم بیارم میدونیم اما دارم میخواد چی میتونه بیارد داره جلو کار کردن واره بیارم هیچی هیچ که با قنفی ندبینم بازم ب ببینید چه روزی مادرش وارد خونه میشه. سلام مادر سلام مادر میبینی مادر بعضه ما رو یه نگاهی به دیوار بیخته و ترکهاش میندسه و با خوشحالی از خونه بیرون میره آب، آقا کجور نبینیدی؟ یه نکری برای گندی حسابی شاکی میشه عباس وارد خونش میشه و باش پسونه میره. خوش اوماله. اصلاً به پی سی دارم چلد میکنم. <تصفح> عباس، باز دور برداشتیا. این کارا خنده نداره. خدا رو خوش نمیاد حالا یه نارامت ما بخوریم؟ عباس انقدر به این بیچاره حظور نکن. بیچاره ها میشه بیچاره یک ناسا سرم که لنگه ندارن بیچاره. تو چه گناهی کردم آخه به تو چه دشمنی کردن؟ مگه تا حالا اجاره خونه به تو ندادن مگه پول آب و برق و گازوئیل ندادن مگه گفتی نکردن؟ گفتی نکردم اخه من اون خراب زندگی بکنم خود شدم که رازیم خرج من تعمیر خونه رو بدن پس چرا نمیذاری چرا مانعش میشی آخه تو چه حقی داری با یعنی ما یعنی تو این خونه این چه حقی نداری مگه یه عمر تو این خراب شده زعمت کشیدی جون چندو هر رختین بیداد بابا ما ما ما عمل کردیم ساختمونونو ما ساختیم پایان کار ما گرفتیم مالیات دارایی عوارض و نوشات و گودو زروارو ما ما کردیم حالا چیکار نداریم مردم دستم این دستم مرد می‌خوام چی خرفت اینجا بالا شو شانسی ما داریم خب خوبه خوبه تهمتی بیجا به مردم نزن خانم توسلی عمر بر من گفت اون یارو دلاله اومده یه چیزایی گفته که آقای توسلی ا تو از خونه بیرونش کرده عباس. پوش کن ببین چی دارم بهت میگم این خونه چه ورسه داشته باشه چه نداشته باشه مال تو نیست وظیفه تو نگهداری از این خونه است. که به جاش اجاره نمیدی چشم تمه به مال مردم نداشته باشه همین عباس کج نرو. خطا نکن این کارا آخراغبت نداره آه این پیچاره ها پا پیچت میشه ها باد شدیدی شروع به وسیدن میکنه و یه کبوتر هم به زحمت مشکل پروازه سعدی و غندی تو خونشون خوابیدن و توسطلی هم داره چای میکنه کبوتر پرواز میکنه و میشینه روی منبع آب که منبع از جا شروع به حرکت میکنه و کمی از سقف میریزه سدی با ترس از خواب میپرند. خونه دیگه کاملا شروع به لرزیدن کرده و تمام دیوارها دارن ترک بر میدارن. حتی لوستر خونه عباس آقا هم میلرزه <تصفيق> <قصف> یک کبوتری دیگه هم میشونه روی منبع آب و حالا دیگه کل سقف داره پایین میان؟ <تصفيق> درها با شدت بازو بسته میشن و شیشه ها میشکنن و میریزن غندی هم از خواب میپره تمام خونش در حال لرزیدنه پاییه های منبع آب لحظه به لحظه در میشن و صحفه و دیوارهای خونه بیشتر فرو میریزن لحظش ها متوقف میشه عباس در شکسته که در دستشوی هستش رو باز میکنه و میبینه تمام کاشی ها و سنگ دستشوی شکستن و از دیوار دستشوی گل و آب که پایین میاد عباس آقا عبا اکبر کلی کارگر و سوار ماشین کردن و به ساختمون میاره غندی و, و آقای توسلی هم که مشغول تعمیر خونه هستن این صحنه رو میبینن و اونا هم میرن و کلی کارگر و سوار ماشینهاشون میکنن و میارن حالا دیگه همه کارگرها با بیل و کلنگ افتادن به جون دیوارهای خونه و دیوارها پشت هم فرو میریز و مهندس و اکبرم بیرون ساختمون نشستن و نگاه میکنند آلو علی کو را پایین پنجره رو چرا بارون گرفته و باد نسبتا شدیدی داخل وسییدم سعدی یه سینی روی سرش میذار و از پشتش که دیگه مخروب شده به روی پشت بوم میاد بارون باید شده همه به کارشون شتاب بده. ای چرا بیکار باید سعدی؟ مشکولشون دیگه یالله مشمهدی و دوتا از کارگرها بخشی از دیوارو با دست نگه داشتن تا نریزه زیاد بقید زیاد آیو ما دیوار بیده همه چکارش کنیم آفیق شد می میخار باشی نمی نگاه میکنی بزن بزن چرا اشو هم کاشوری آقا گانجی کاری میکنی خونه رو آب برداشت که باروش میگیری باروش میگین نه الان میگوشون باروش نمیگین برسونین گه میگم چه دیوارو ول میکنن و یه بخشی از دیوار میره نظم بابا برای پشم چرا خراب میکنید نظم آقا بزن نظم آقا بزن چرا کار انداز میشن بابا ای بابا اوه فلش کنی من فلش کنم بزن آقا بزن بزن آقا بزن بزن, آقا بزن. بزن. نزن بابا ما چی میگیم من نمیگم فقط چرا خرابش آقا ایشون میگه بزن شما نمیگی نظم اوه راست میگن ما اصلا تکلیفمون این خونه لوکان نیست یکی میگه بزن یکی میگه نزن اینجوری اصلا نمیشه کار کرد آقا کار تحتیره تا اینها اقل کم تکلیم بشون و با خودشون روشن کنم بریم آقا بریم تکلیم کاریم چیره روشن کنم خورای رو از کجا دارید بری کجا دارید بری حالا دیگه بارون شدت بیشتری گرفته و پایه های منبع آب دیگه کاملا در حال جدا شدن است باز هم شروع به لرزیدن کرده و لستر سقف عباس هم از جاش کنده میشه بیده بیده. بیده. که داره میاد پایین. مردم شکافی خدا خونه که بیا با درست خونه رو تعمیر کنی تا به این همه خون گریم همه اهالی خونه با عجله مشغول جمع کردن وسایل مهم زندگیشون هستن صنگو صنگو چه این چی کار داری؟ چرا رو بگیر، این بالا کرد. حالا تنگ، تنگشانش با بازمان. شرایط میشه الان ما در غرتنی. باشه. ما در غرتنی. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. رو باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. اکبر و مادرش هم وسیله رو جمع میکنن و از خونه بیرون میرن زن مهندس هم با بچه خونه رو ترک میکنه و حالا چهارتایی با چتر به بیرون خونه میرن منبع آب دیگه کاملا در حال افتادن و لرزش ها بیشتر شده و بقیه احالی همه سعی میکنن فرار کنن که منبع بالاخره میفته و سخف خونه کاملا پای میاد دو ما همو بده کنه ما هم بده کنه ما هم بده کنه ما هم بده کنه ما ندا آب تو راپله ها با شدت زیادی جاری می شو همه آدم ها رو با خودش می دره ساختمون شکسته میشه و از جاش کنده میشه و همه احالی با فشار قوی آب به بیرون پرتاب میشه وان حمام هم بخشی از دیوار خونه رو میشکافه و از دیوار آویزون میشه حالا دیگه آب داره کم و کمتر میشه مهندس خودشو از زیر آوار خونه بیرون میکشه ولی عباسقا هنوز زیر آوار <تصفيق> به سختی عباساغر رو هم بیرون می‌کشه بچه, بچه, بچه خانم توسلی هم خیس آب روی زمین استاده و گریه میکنه افوز. افوز. افوز. باید. صبح شده شد و یه ماشین پیکان به ساختمون نزدیک میشه معمول شهرداری با دو نفر دیگه از ماشین پیاده میشن و به سمت ساختمون میرن کل ساختمون به حالت نیمه مخروبه در اومده و احالیش زخمی و پت و پیش دوره هم نشسته. کندیه هم داره غذا میکنه این هم که دامونه همه بود که نوز درکو بیدی؟ بی. بله بله چون خالم بود آه چون شده؟ آره یالله بگو بریم بفنی یالله بفنی بمون چون شده؟ بفنی یالله یا الله یا الله یا الله سلام علیکم حالتین چه خبر خدا بد نده چی شده خدا خیلی بی‌مرح کردن می‌بخشین ما چند تا پرسشنامه داریم که باید از طرف ساکنین این خونه پر بشه اجازه می‌فرمایید ساکلی نداره بفرمایید می‌بخشین اینجوریه اینجوریه شما می‌بخشین شما تو این موقعیت مزاحمت می‌شیدین سلام علیکم سلام علیکم خدا بد نده شما برای این مشکل ارز به حضورتون که این چند درستشنامه هست که توسط ساکنین این خونه باید پر بشه مبنی بر این که طبق ماده ششم قانون انحصار براست و تفسیر اون مؤسسات تجارتی و صرافی و غیره و یا اشخاصی که انوال مجهول الوارث نزد آنهاست مکلفند آن انوال را تسلیم یا تعدیه به دولت نمایند صحیح صحیح به هر کسی میتونه محل سکنای خودش رو به اقصاد طبیل المدت که به میزان همون اجاره بها خواهد بود طبق سند رسمی خریداری کنه است که اجاره اون به حساب اصل بهای خونه پذیرفته خواهد شد و طبق این تعد و نفشی اونو مرمت و باسته زیر کنه ارز که مجموعه مسکونی چشمندازی از میدان بزرگ شما هم اینجاست بله بله, بله خواهش اینم مغازه هاست که به صورت یه بازارچه ساخته می‌کنند. اینم بازی مجموعه مسکونی دیگر است. من از این توش هم به گفرش و پیش فروشی می‌شه. چه فرق مختلیف باگزار؟ که نیاز پسی در این بازار زمون میرسه؟ و همین جا رادیو، فیلم، اجاره نشین، ها به پایانش نش میرسه؟ من آرمان قفاریان نویسنده و راوی از طرف فرشاد آذرنیا تحلیل کننده و علی حاجی نوروزی صدا بردار این رادیو فیلم آرزو می‌کنیم که هیچ اجار نشینی توی دنیا وجود نداشته باشه و لبخند در سرتا سر زندگیتون جاری باشه و با این امید و آرزو از همه شما خداحافظی می‌کنیم حق نگهداری